بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال راقيت يوما بيت حفظه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ومستقبل الشام مستقر القب عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما عبدالله بن عمر یکی از بزرگان صحابهی که احادیثش به نزدی که دو هزار تا حدیث با تکرار میرسه بدون تکرارش کمتر از هزار تا کل روایت هایی, هایی که متفقون علیه در بخاری مسلم از روایت های عبدالله بن عمر هست سلشت هشت هست حالا با شمالش بعد از عیمه و عده احادیثی که عده احادیثی که بخاری فقط تنها روایت کرده از عبدالله بن عمر 81 و عده روایتی که مسلم متفر شده با سی و یکی فسد و شست که متفقون بخاری و سی و یکی به ما مسلمان ها تقریبی که این مال زحمت کشیدن و این شمارش ها به ما رسوندن خب این صحابه بزرگ یک سال قبل از مبعث رسول الله صلی الله علیه وسلم به دنیا آمدن در سن 15 سالگی در جنگ احزاب جنگ بچ جنگ, جنگ احزاب یا خندق شرکت کردن و در سال افتاد و چهار با, باید میگن با سن حلوش ششت و پنج اشتاد و شش از دنیا بهلت میکنن و میشن رحمه الله و رضی الله عنه. تقریبا چندی پس از خوش شدن عبدالله بن عزوبر یعنی حلوش سه تا بعد از عبدالله بن عزبه. ایشان رحلات می کنن و فوج الله و رضی الله عنه. خب. توسیهاش معروفه به حسین بن علی بن عبی طالب وقتی که خاص بره کوفه، نصحش به اصحاب بحثش در فتنه ها و شرکتش در جنگ ها و نبرد ها از همون بعد به اسلام از همون خونزه سالگی که در جنگ خندق شرکت می‌کنه. یعنی جوان مردیش تجاعتش علمش این دیگه شناخته شد نیاز به تعریف از این صحابه جدیل لازم نیست میگید خودش روزی رفتم بالای خانه حفظ خواهرم چکر ندارم؟ میدونم بحثش شده که مسائلی هست من توضیح ندادم میخوام توضیحش بدم میگید که رفتم روزی بالای خانه حفظ رضی الله عنها دیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم رو به شام و پشت به کعبه غذای حایرت خودش رو انجام میدن ما در مذاهب ما گفتیم بعضی‌ها می‌بینن که این حدیث منسوخه ناسخه از ابو حدیث ابویوب حدیثی گذشته و اون حدیث منسوخه یعنی دیگه بعد از این فعل رسول الله دیگه اصلا هیچ اِشکال نداره که به کعبه بره غذای حایرتش انجام بده یا پشت به کعبه و ها گفتن که از روی هم حدیث قولی رسول الله صلی الله علیه و سلم و باید به گفته خود رسول الله صلی الله علیه و سلم چسبید که در حدیث ابویو مدنه نه اگر رو به کعبه و پوش به کعبه و این حالت که بوده و این حالتی که بوده و رسول الله صلی الله علیه و آله ما در قد حیته پوش به کعبه انجام میدن این حالت خاصیه چون مستترن و دو در چشمه مردم داره انجام میده و این ترجیح ترجیح علامه البانی من میشهد شوکانی علامه البانی در تمام منعه صفحه پنجهانو علامه البانی رحمه الله میگوید که اگر قرار باشه اگر قرار باشه چه در بنیانش و چه در غیر بنیانش چه در نماز و خارج از نماز آب دهن انداختن رو به طرف کعبه و قبله منحیون ان باشه حرام باشه الله علیه و صدای نه کرده باشه نه من کرده باشن چه برده پس به قضای حاجات انجام دادن در جایی که انسان مستطعه یا جایی که انسان قضای حاجات خوش انجام میده و دیگار دلوبرش هست یه فرقی با هم نمی کنه اون چیزی که ما ترجح داریم و ما گفتیم و ترجیح علامه ابن عثیمین هست و جمهور ائمه اینی که این فعل, فعل خاص رسیدات الله علیه و وسلم نیست و خصوص بودن و خاص بودن نیاز به دلیل داره اون دلیلی که در حدیث ابو ایوب انصاری اومده اون دلیل عامه و این دلیل خاصه دلیل عام نهیه از انجام دادن قضای حاجت روی اوبارش رو قبله و این دلیل, دلیل خاصیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جایگاه جای خاصی که دور برش بستش و پشت به قبله درن خضاری حیات خوش انجام میدن پس عام طبق اون مسئله که ما در اصول فیض داریم عام مخصوص میشه در یک حالت خاصی که رسول الله صلی الله علیه و طرح انجام دادن و هیچ دلیلی و مدرکی بر اینکه این فعل خاص رسول الله هست ما نداریم اما قضیه قی که اگر قرار باشه آب دهن انداختن نهی باشه پس باید قضای حاجاتو نمیدنم ادرارو اینا هم مثل اونها بازم تحریم شدید تر باشه این مسائل در بحث قیاسی نیاز به بازم اساس اتافیاتو خودش داره که ما مثلا علت مثلا انجام دادن قضای حاجت و یا عابده هن انداختن رو به طرف کعبه باعث علتشو مثلی اگر علت مشخص شده بود و علت مفیث و مفیث هر دو تا مثل هم بود مثلا احترام احترامی به فکر الان که ما داشتن باز اگر مثلا علت ما یکسان بدونیم خب بله میشه گفت که اگر طواف شابه دهن انداختن نه شده باشه پس اونم باعث بیشتر از امن بشه و نه بشه لیکن ما هیچ دلیل و مدرکی بر این علت معلول ها داریم و اگر قرار باشه بی احترامی باشه هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که کاری رو انجام بدن حتی در خلوت که رسول در این دیباسی مثلا بالفرض از فرطش انجام بدن و این بالفرض و فعل خودش بی احترامی رو انجام دادن صدور کابل حتی در فرض بگیم کراهت هم داره يعني إن لا تكراهات بكفر بردان برئة رسولة صلى الله عليه وسلم بغل سنجيئة بس صحيح همون كما قفتين الترجحة هي الشيخ همون الشيخ الله محمد العثيمين إنك أحادثة مثل أبو أيوب، أحادثة قولة أبو أيوب، أحادثة عامة و إن حديث. حديثة خاصية که عام را محسوس میکنه در یک حالت خاصی و اونم در بنیان که اشکال نداره بعضی هم در این مسئله متوقف شده دیگه اونالا این خلاصه صحبت هایی هست که باید پیرامونی مطلب بشه که الان دوباره تکرارش کردیم و یک مسئله که هست و اونم یک حکم رو یا به پشت بیت المقدر صلاب بعضی هم میگن حرم بیت المقدس که اسم حرم به کار بردن جایز نیست چون حرم اون تا حرم حرم مدین و حرم هست اونجا دیگه حرم نیست که نماز در اونجا حالا بر روایت دیمیست من جا یا, با یا پاون, پاون بار نماز داشته باشه لیکن الان قبله اول مسلمان ها سکمه به روبه بیت المقدس خضای حیات انجام دادن و یا به پشت به قرامه كذلك يوجد دهني مثلا حديثي عن داين ولد دهين بره حديثي هذا از معقل اسدي ده نزه ابو داوود وهمشي بن احمد بن حنبل في مختلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم والسلام من كدن از انجام دادن قضای حاجت روبه دو تا قبله. روبه دو تا قبله. لیکن حدیث به علیت جهالت عبو زید ضعیفه. به علیت جهالت عبو ضعیفه. در نتیجه ما حکمی نداریم وقتش. اصل اباحته. اصل جایز بودنه و هیچ دلیلی بر تحریمش نداریم. حدیث بعدی که بکنیم. آنه نسته. رحمه الله علیه و آن الله و آن علیه و آن علیه و آن علیه و آن علیه و آن انا و الله علیه وسلم آن علیه و آن علیه و و آن علیه و آن علیه و و و و و میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که وارد خلا میشن. خاصه خلا یا خلا به مکانی گفته میشه خالی که برای قضای حاجت مخصص شده. مخصص شده یک جای خاصی که در صحرا باشه، یک مکانی پشت کوهی جوی که چشم کسی بهش نرسه، اونجا میگه خلا. خب وارد خلا میشدن. میگه ساحمل و غلام نحبی میگه من و یک غلام یعنی یک بچه همسند سال خودم در بعض از غلامی از انسال حالا در بعض روایت مده ابن مسعود نیکن این روایت هیچ اساسی نداره و غیر ممکنه که ابن مسعود در اون وقت غلامی همچون انس باشه انس سنی نداشته بزرگ شده خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش و غلام غلامی از، یعنی بچه ای از اون بچه های مدینه که همسند سال خودشه برای اینکه دست کمک رسول الله باشن میگه که فاحمل فا انا و غلام النحوي اداته من اضافه اضافه همون ظرفی گفته میشه که درش آب داشته میشه میگه که در ظرفی که پر از آب بود و همچنین یک نیزه‌ای که الا بین عصا و بین نیزه هر صلاح معمولا امدان بيك چوبی میگن که از عصایی کم کن کچکتره و سرش حالت شده ای داره یا مثلا به فرد حالت نیزه در وردنش حالا ما تعریف دقیقه از عنده نداریم لیکن الان در بعضی جاها بعضی سطاب لغت میگن الانده تا هو الحربه حربه هم و عدات نیزه و چیزی که در جنگ استفاده میکن لیکن از نیزه کچکتره خود عنزه از نیزه کچکتره و دقت بکنید که این عنزه را فعنزه نکنید. عنزه با تکون نون بزگفته میشه و این عنزه هست عنزه یکی که ما یعنی من اون غلام اون بچه که هم سن سال خودم بود آب همچنین نظر رو میبردین به رسول الله صلی اللہ علیه و سلم فیستنجی, فیستنجی بعد استنجا میکردن با آب خب چی میخواد برسونه چی حکم میخواد برسونه با این مسئله ما مثلا میبینیم عالمی مستعید بن مسعیب مکروه میدونستن استنجا کردن با آب استنجا را مکروه میدونست خوششون نمیدهد استنجا کردن با آب اناد رضی الله عنه میخواد در اینجا یک خف میره به خودمون برسونه و اونم اینکه که کسی که میخواد خودش رو پاک بکنه با آب هیچ مشکلی نیست میتونه خودش رو پاک بکنه با آب چی مشکلی هست بلکه اینه که آب پاک هو الطهور و ماء هو الحل می آب پاک بعد هم هست میگیه که منم خودم آب در رسول الله میبردم که استنجا و فی استنجی آب میبردم که استنجا بکنه با آب الله والا در این مسئله کدام یک اولاتر سنگ بهتره یا آب بهتره یک یعنی حدس باهم شک در نیست که حدس باهم اول سنگ باشه بعد آب باشه بهتره لیکن در ترجیح بین این دو تا شک درش نیست که حالا بین ما برای ما شک نیست که آب بهتر از سنگه حسین اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم که راهه سنگان پیدا میشه ولی با این وجود انس میگه که که من آب خوردم برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و چی؟ با آب استنجا کردن قدر قضا حالی رو با آب با کردن میبونه ایک مسئلهی که در این حدیث نهفته است. و اونم هم این که این عنزه، این نیزه که همراهشون بوده چه علتی داشته که همراه, همراه خودشون بردن استطاع بله برای پناشدن یعنی یک پایی میگذاشتن که روش پارچه بندازن که شخص قضای های از بخونن این یک از در دیگه خاشتنش خودش، نماز که اینجا نیست برای قضای خایست یا اینکه که پارچه که درست من گفتن پارچه انداخته بشه که شخص تطورشه و اما محدود مشخص کردن که شخص که برش مترتب, مترتب نمیشه چون جوی خلبتی و کسی هم نیست حالا چیزهای متعدید در این مثل نوبه است گفته شده که این عنوزه برای اینه که شخصی که میخواد قضای خایستش رو بکنه زمین رو بکنه خوشن سرشم تیز تیزه، سرشم سرش مزکمه، زمین رو میکنده که اگر قرار که ادراری بکنه یا قرار قدر حایات انجام بده، در اون قسمت دفنش بکنه. یا زمین رو یکم گودازی بکنه که روی بدنش چیزی پاشیده نشه. خصیصا مثلا به الفرد دادم در یک جوی قرار داده که شاید مثلا به اون ادرارش دوباره بیا ترازیر بشه روی پیراهنش و پیراهنش نجس بکنه. پس برای این چیزها هم استفاده می شود در من که بعضی از علم ها گفتن و خیلی هم حالا شادم هم وجد داشته باشه اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از قضای حاجتشو خب مسلمان همطور که در از دروات دیگر اومده وزو بیگرفتن و بعد از دوی هم رسول الله نماز می نیاز داشتن برای نماز کندنشون کشی؟ یک تطرهی داشته باشن و همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر میخواستن نماز بخونن پوش تتر نماز میخونن. پوشش تتر. واقع در یک جا ابن عباس میگن در منا صلاه علاوه غیر جدار بدون دیوار نماز میخونن. لیکن اهل براین که حامد که در در صحیح ابن خزیم در استانی در صحیح که رسول الله هم آم میکنن هم نه میکنن می از اینکه بدون ستر کتی نماز بخونن. ام میکنن ادا صلاح احدکم فر یو صدق ادا ستره کسی نماز کن پوشت ستره نماز میکنن و نه میکنن لا یو صلیان احدکم الا اله ستره نماز نخونه مگر پوشت ستره خودشون میومدن در مرسل پوشت استوانه پوشت عمود نماز میکنن در کعبه میرن بودن یک متریه یک متر و 20 سانتیه دیوار کعبه نماز میکنن که بین خود رسول صلی و سلم سجده سجدگاهش و سترش مرور یک گوزفند کچولوی بود یعنی حالویش از یک وجه و اندازه سترش هم معمولا به اندازه معخره ره یعنی همون زینه شطور پشت زین شطور تقریبا حالویش یک وجب با بالاتر حالویش سی سانت بالاتر اه... معمولا ستر داشتن آره متکا باشه یا مثلا بفرد همین هر که خیلی جاها در نماز عید مثلا یا در یک منع عام نماز بخونه نزره می‌ذارن جلو به خودشون می‌ذارم و خوشطرش مسلمان نماز نماز میخونن حالا احکام ستره قواعد ان در بحث نماز قائم داشت لیکن این فواید خود همین انزه یا نزه یا امن حرب حدیث بعدی علاوه بر ذلك فضل الله ورحمه الله أنا بقصادة أنا الحارس بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكركم بيمين وهو يبول وهو يبول ولا يتمسح لا يمسكن أحدكم لكن. وهو يبول ولا يتمسح من الخلق بيمين ولا يتنفح و این احکام زیادی هست در این حدیث ابو قتاده اتحارت من طبعی رضی اللہ عنه از که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لا يمسکن احدكم ذكره بيمينه وهو هو یبود در خیل ادرار کردن کسی از شما دستش به ذکرش نباشه تکریم دست یمین دست راست دست راست آدم در حال ادرار کردن نباید چسبیده باشه به زکر آدم اولا این شکم فرقی بین زن و مرد نمی کن. چون علت اینی که دست راست هیچ برخولی با نجاست نداشته باشه حتی اگر نجاست روی زمین ریخته باشه انسان میخواد پاک بخنیم با دست چپش پاک بخنیم نه با دست راست تکریم دست راست از یک جهتی دیگه تنظیبیشه جه که اصلا نجاستالود نشه چون انسان معمولا دست راست در غذاب در. کارهایی نیک استفاده میکنه بخاطر همین در اینجا نه شده کسی ذکرش را با دست راست بگیره در حین ادراک کردن ولا يتمسح من الخلاب یمینا و نجاستش هم با دست راست انجام نده ولا یتنفس در و در اون آبی که میخواد بیاشامه بیا در اون آبم نفس نکشه در اون آبم نفس نکشه بعد مثلا بالفرق آبی مثلا آب داغی دیروهی شده همونم می یا فوت می که این از اون چیزهایی هست که من شده و علتاش هم خب معروف همونطور به خودمون می میکروب یا ویروس از جسم انسان شاید باعتباسست همون نفس کشینم وارد اون زرف بشه و خودش سبب تکثیرش بشه در اون آب و خیلی چیزهای دیگه که بعد دوباره وارد جسم انسان بشه حالا میبینه یک مسئله‌ای که خص اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی از شما وقتی که ادرار میکنه ذکرشو نگیره حالا در نمازی یا برای در حین قضاحی خاجرتی در حین نماز دید. یک مثلا بسیار خارشی میفته در اون قسمت یا همینجوری در نماز هم نیست خارج از نماز میخواد خارش بده آقای بازم همون حکمو داره یا نه این فقط خاص ادرار کردن و خاص حضر یا حاجت بله؟ علت بردن؟ علتش؟ یعنی علت مخصص شده؟ علت مخصص شده؟ یعنی شده یا مخصص شده به حالات حالت ادرار کردن؟ چرا؟ گفتین هم؟ شدی که ما هستن باز میکنیم همون بحث نجاته؟ و در خارج از نماز بیش صحابی هم تصحابی که می‌دونیم رسول الله دستم به ذکر کردم در نماز رسول الله گفته این نماهوا، بدون اطمینان یک از گوشت بدره فرق با دیگر جهانان در خودش، ماهی که مثلا بر فرش با آف شو می‌دهیم و قسمم. پس رستگاهای مذهب مثلا ابن حذیه و داوودی ظاهری این حالت حالت دست نگرفتن، یعنی تحریم دست گرفتن به ذکرها، فقط به یک حالت خاصیه و اونم حالت ادراک کردن اما در دیگر جاها دلیلی بر تحریم و من نیست و اونهایی که مثلا بر حد مطلق جرکن از جمهور علماء که گفتن که چه در نماز چه yani نماز کسی حق در و دست ذکرشو دکرش رو بگیره علتش احادیس مطلقی هست که بدون قید اومده یعنی بدون و هوا یبون لایم کسا ناحده که فکره و بیامینه عام اوم و باید سلال به با این حدیثون عامه دیگه حکم جریان دادن بعد تمامی حالات دست راست اصلا کلا نباید به ذکر بفره ولی که صحیح همونطور که ما گفتیم این حالت یعنی دست گرفتن با دست راست ذکر گرفتن فقط در حالا ادراب کردن که نه شده و در دیگر حالت ها هیچ اشکالی ندارن و سؤالی که مطرح میشه آیا این نه؟ نه دلالت تحریمی داره یا دلالت تنزیحی یعنی آیا مکروه یا حرامه اصل نه اصل نه بر حرام بودنه اصل نه بر حرام بودنه چون که دلیل بیاد که صارف بشه این نه به کراحت که ما دلیلی هم نداریم ولی که جمهور بر این که نیشه ذکر گرفتن با دست راست در حین ادرار کردن مکروه حرام نیست. چون معمولا مستقیما نجست نمیشه مگر در حالت استنجا که جمهوری آنها برعکس اون قضیه اول بر تحریم میشن کسی با دست راست قضای حاجت و قضای رو پاک بکنه خب، این خلاصه بحث امروزمون در آداب آداب دشری و آداب خلا و خلوت قضای حاجت و شرسن سوالی هست در این احادیثی گفته شد اگر کسی قصد اون شخص ماجوره نه الضروره تبع المحظورات دیگه بعد که شد دیگه دیگه محظورات مباح میشه خب سوالی چیزی هست الو سآلی که میشه شو جا سوال ها بکنن کسی دلش نمیشه دستکش تو دستش بکنه یا بلفرد با یک برش خاصی بخواد پاک بکنه آیا مقام دست رو میگیرد یا چون رسول گفتن که با دست پاک باشه باید فقط با دست بشه اصبر پاک کرده اصبر پاک کرده بلی که اسب با کردن دیگه ظاهری نباید باشیم که نه چون راز را گفته دست با دست باشه با با با نه هر چیزی که پاک ببنه مقام پاک کردن رو میگیره الله خوصا اون مادرانی که مثلا فرق بچه کچی که دارن تلاشون نمیشه هی از کشی دستشون میکنن و میشورن خب این خلاصه از مرحبتی که سطح حدیثی که امروز داشتیم تا انشالله ارس آینده حدیث عبدالله عباس و اون دو شخصی که در عذاب کشیدن. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين